فصل سوم انتخاب به نظر من حالا فقط یه انتخاب ساده داریم یا مشغول زندگی کردن بشیم یا مشغول مردن اندی دوفرین در فیلم رستگاری در شاوشنگ. مرد ثروتمندی در بستر مرگ پسران جوانش را فراخواند و به آنها گفت که میخواهد قبل از مرگش فرصت تجربه یک زندگی پربار و غنی که خودش برای سالهای مدیدی از آن بهره برده بود به آنها منتقل کند او به پسرانش گفت اگه میتونستم همه دنیا رو به شما میدادم اما نمیتونم در عوض برای شما یه هدیه باقی گذاشتم پسرها با شنیدن صحبت های پدر در حال مرگشان شروع به گریستن کردند اما او با حرکت دست از آنها خواست که ساکت و آرام باشند من به هر کدوم از شما یه جعبه میدم تا اون رو سرمایه بکنین اینکه چی تو هر یکی از جعبه ها باشه به انتخاب خودتون بستگی داره او دو جعبه زیبا را از کشوی میز کنار تختش بیرون آورد و روی پاهایش گذاشت. سپس یکی از جعبه ها را باز کرد و محتویات آن را به پسرانش نشان داد. در یکی از دستانش یک دسته هزارتایی اسکناس نوی هزار دلاری یعنی یک میلیون دلار و در کف دست دیگرش یک سکه یک سنتی مسی برراغ بود. او گفت من به هر دوی شما فرصت یه انتخاب یکسان میدم. یه میلیون دلار پول نقد یا یه سکه یه سنتی؟ هر کدوم که انتخاب کنین باید به مدت یک ماه اونو پیش پیشکار من به امانت بذارین تا فرصتی برای فکر کردن درباره نحوه استفاده از اون پول داشته باشین. هر کدوم هم که نگیرین به دارایی های من برگردونده میشه تا صرف امور خیریه بشه اگه یه میلیون دلار رو انتخاب کنین طی اون یه ما هر وقت که بخواین میتونین رو به صورت اعتباری از حساب بانکی برداشت کنید همینطور اگه اون سکه یه سنتی رو انتخاب کنین هر وقت که بخواین میتونین اون رو هم برداشت کنین. اما هر روزی که انتخاب میکنین به موجودی حساب اون سکه یه سنتی دست نزنین پیشکار من دستور داره که پول موجود در اون حساب رو دو برابر کنه حالا برین و دربارش فکر کنین این کتاب رو هم با خودتون ببرین تا امشب رو باهاش سپری کنین فردا صبح برگردین و انتخابتون رو به من بگی. او به هر یکی از آنها نسخه ای از کتاب داستانهای کوتاه هدیه داد و آنها را روانه کرد اواخر آن شب پسر بزرگتر غرق در وقایه آن روز در تخت دراز کشیده بود و با خودش می گفت باید کدوم یکی را انتخاب کنم چرا پدرمون این حق انتخاب و به ما داده چون خوابش نمیبرد چراغ کنار تختش را روشن کرد و به دنبال کتابی گشت که پدرش به او داده بود. فکر کرد که مطالعه قسمتی از کتاب به سپری شدن زمان کمک می کند و از کجا معلوم شاید خوابش میگرفت. کتاب را که پیدا کرد برای اولین بار به عنوان آن توجه کرد. روی جلد کتاب با نقشی برجسته و حروف طلایی نوشته شده بود؟ انتخاب. با خودش گفت: انتخاب جالب به نظر میرسه. انتخاب میونه چی و چی؟ کتاب را به سرعت ورق زد و متوجه شد که اکثر های آن بیش از یک صفحه نیستند. حداقل در نگاه اول به نظر میرسید که عناوین آن هیچ ارتباطی با یکدیگر نداشته باشند. شبیه مجموعه طبقه بندی شده ای از افسانه ها یا داستان های کودکانه به نظر میرسید. میخواست کتاب را کنار بگذارد اما چیزی در گوش او زمزمه میکرد ادامه بده کمی از اونو بخون کتاب را ورق زد و به اولین داستان آن بازگشت و شروع به خواندن کرد آبی. روزی روزگاری سنبول آبی کوچکی در نزدیکی کرانه یک آبگیر بزرگ رویده بود سنبول آبی آرزو داشت که طرف دیگر آبگیر را ببیند، اما زمانی که این آرزو را با خودش زمزمه می کرد، آب حسابی خندید و با تمسخور گفت، طرف دیگر، برای گیاه کوچکی که حتی نمی تواند حرکت کند، غیر ممکن است. سنبول آبی عموماً به صورت شناور بر روی سطح آبگیرها و باطلاقها در نواهی گرم سیری یافت می شود، و گیاهی زیبا با گلهای شش گل برگی زریف و حساس است این گیاه خاص یک گونه عالی از تیره خودش است بسیار زیبا، بسیار کوچک و بسیار زریف و حساس اما موضوعی بود که آب آن را نمیدانست. سنبل آبی یکی از پربارترین و بارورترین گونه های گیاهی است که سرعت تکثیر آن گیاهشناسان را شگفت زده کرده است یک سنبل آبی می تواند بیش از پنج هزار دانه تولید کند، اما شیوه تکثیرش به جای پخش کردن دانه هایش توسط آب و باد این است که با دو برابر کردن خودش رشد کند و ساقه های رونده را در اطراف پخش کند تا به گیاهان جدیدی تبدیل شوند. اولین روزی که سر و کله این سنبل آبی کوچک پیدا شد، هیچ کسی جز آب متوجه حضور آن نشد. حتی در روز دوم همانطور که سمبال آبی دو برابر میشد باز هم هیچ کسی متوجه آن نبود. همینطور در روزهای سوم و چهارم و روزهای دیگر نیز هیچ کس به آن توجهی نداشت. در حقیقت اندازه آن در دو هفته اول آنقدر ناچیز و کوچک بود که حتی با این که اندازه آن هر روز دو برابر میشد به سختی می توانستید آن را ببینید. تا روز پانزدهم آن دست سنبل آبی کوچک و صورتی رنگ فقط یک متر مربع از سطح آبگیر را پوشانده بود. در روز بیستم یعنی بعد از گذشت دو سوم از روزهای یک ماه اگر شخصی از کنار آبگیر عبور می کرد متوجه آن دست گیاه شناور در گوشه آبگیر می شد اما آن را با یک حوله حمام گم شده یا یک تکه کاغذ دور انداخته شده اشتباه می گرفت. کمی بیش از یک هفته بعد یعنی در روز بیست و نهم، نیمی از سطح آبگیر هنوز هم معلوم بود. ناگهان در روز سیوم یعنی تنها بیست و چهار ساعت بعد سطح آبگیر کاملا ناپدید شد. تمام سطح آبگیر را لایه انبوهی از سنبل آبی بنفش و صورتی پوشانده بود. پسر آبگیری کاملا پوشیده شده با گلی زیبا و با شکوه را تصور کرد و با خودش گفت نمیدونم این داستان چه ربطی به انتخاب داره. سپس ای کشید و کش و قوسی به بدنش داد. برای امشب کافیه. چراغ را خاموش کرد و روی بالش آرام گرفت. چند دقیقه بعد دوباره از جایش بلند شد و چراغ را روشن کرد. چیزی او را ترغیب می کرد که به خواندن کتاب ادامه دهد و چیزهای بیشتری یاد بگیرد. کتاب را ورق زد و به داستان بعدی رسید. بار دیگر شروع به خاندن کرد. داخل سطل روزی روزگاری، دو گورباقه کوچک آبگیر امن و بی خطرشان را ترک کردند و برای کشف دنیای جدید پا به مزرعه نزدیک آبگیر گذاشتند. چیزی نگذشت که پی بردند وارد یک لبنیات سازی شدند، آنها یک سطل بزرگ شیر پیدا کردند و به داخل آن پریدند. سپس متوجه شدند که نیمی از سطل با خامه تازه پر شده است. گرباغه ها بسیار هیجان زده شده بودند. هرگز چیزی به این خوشمزگی ندیده بودند. خیلی زود شکمهایشان پر شد و احساس خابالودگی کردند. بنابراین تصمیم به رفتن گرفتند. آنجا بود که فهمیدند دوچار دردسر بزرگی شده اند. آنها برای پریدن به داخل سطل هیچ مشکلی نداشتند اما چطور میخواستند از آن بیرون بیایند دیواره سطل خیلی لیز بود از آنجایی که نمیتوانستند به ته سطل بروند و چیز سفتی هم نبود که برای بیرون پریدن بر آن تکیه کنند بیرون پریدن از سطل برایشان غیر ممکن شده بود آنها گیر افتاده بودند عجولانه و دیوانوار شروع به تقلا کردند و روی دیواره لیز سطل به دنبال جای پای ثابت از سر و کول هم بالا می رفتند. سرانجام یکی از قورباغه‌ها با ناراحتی گفت فایده ای نداره کارمون ساخته است دیگری نفس زنان گفت نه نباید تسلیم بشیم وقتی که بچه قورباغه بودیم واقعا فکرش کردیم که یه روز از آب بیرون بپریم روی زمین جس و خیز کنیم تلاش کن برادر تلاش کن دعا کنیم مجزه رخ بده قورباغه اول با ناراحتی به برادرش نگاه کرد و گفت تو زندگی قورباغه ها معجزه وجود نداره خدا و خودش را رها کرد و به آرامی غرق شد اما قورباغه دوم تسلیم نشد او در یک دایره کوچک به دست و پا زدن ادامه داد و به امید معجزه بود یک ساعت بعد او هنوز هم در آن دایره کوچک دست و پا می زد دیگر حتی نمیداند چرا دست و پا می زند همانطور که خستگی عضلات کوچکش را از کار میانداخت، آخرین حرف های برادرش را به یاد آورد. ناامیدانه اندیشید: آیا حق با برادرم بود؟ آیا تو زندگی قورباغه ها هیچ معجزه‌ای وجود نداره؟ سرانجام او نیز دیگر نتوانست شنا کند. با ناراحتی فراوان تسلیم شد و از دست و پا دست کشید و تسلیم سرنوشتش شد. در این لحظه پسر دیگر نتوانست به خواندن ادامه دهد. دیگر نمیتوانست چشمانش را باز نگه دارد و به همان سرعتی که قورباغه در دایره ناامیدیش برای تسلیم نشدن دست و پا میزد، به خواب رفت. گرچه جایی در پشت افکارش حدس میزد که داستان دو قورباغه به کجا می انجامد. در حقیقت حدس او تقریباً مطابق با آخرین پاراگرافی بود که خوانده بود. و حدسش این بود اما در کمال تعجب قورباغه دوم غرق نشد. او همان جایی که بود باقی ماند، گویی که در هوا معلق بود. با تردید یکی از پاهایش را دراز کرد و احساس کرد که پایش به یک چیز محکم و ثابت برخورد کرد. او آه بلندی کشید و با برادر بیچارهش وداع کرد. سپس با فشار آوردن بر روی تکیه بزرگ کره‌ای که با دست و پا زدن مداومش به وجود آمده بود، بیرون پرید و به سوی خانهاش در آبگیر روانه شد پسر دیگر آن مرد ثروتمند نیز آن شب بیدار ماند اما اصلا به آن کتاب نگاهی نکرد او آنقدر مشغول فکر کردن بود که قادر به خوابیدن یا خواندن کتاب نبود او همان ای که دسته اسکناس های هزار دلاری را دید تصمیمش را گرفته بود او قبلا نقشه را برای آن سی و یک روز کشیده بود صبح زود او سریعا دست بکار شد و انتخابش را به پدر گفت. سپس برای اجرای برنامه بلند پروازانه اش یک مدیر اجرایی استخدام کرد. آنها سوئیتی را در مرکز شهر اجاره کردند و در طی شش روز آینده مصاحبه های استخدامیشان را در آنجا انجام دادند. در پایان هفته آنها ماهرترین و باهوشترین مشاوران مالی، تحلیلگران بازار و کارشناسان سرمایه گذاری موجود را استخدام کرده بودند در هفته دوم، آن گروه تمام وقتش را صرف تحقیق، تفکر و انتخاب استراتژیهایی کرد که به پسر آن مرد ثروتمند کمک کند تا یک میلیون دلار پول باداورده اش را به ثروتی واقعی تبدیل کند. در آغاز هفته سوم، آنها برای در نوردیدن میدانهای تجارت و تبدیل آن یک میلیون دلار به میلیونها دلار کاملا آماده و مجهز بودند. چند روز بعد او تصمیم گرفت تا به دیدار برادرش برود و ببیند که او با یک میلیون دلارش چه کاری انجام می دهد اما وقتی پیش برادرش رفت با کمال تعجب دید که او یک میلیون دلار را رد کرده و در عوض سکه یک سنتی را انتخاب کرده است. پسر اول به برادرش گفت: «فردای اون روزی که ما به ملاقات پدر رفتیم من دوباره به دیدار پدر رفتم پیشکارش اجازه داد تا زیر چشمی به داخل جعبه نگاهی بندازم. یه همراه به سکه تنهام اضافه شده بود روز سوم برگشتم دوباره یواشکی توی جعبه را نگاه کردم چار تا سکه دیدم تو روز چهارم هشت سکه تو جعبه بود برادرش با ناباوری به حرفهای او گوش می‌داد که همچنان توصیف سکه های ناچیز و ناقابلش را ادامه می‌داد. در روز پنجم شانزده سکه در روز ششم سی و دو سکه و در پایان هفته پسر شست و چهار سکه بود. در پایان هفته دوم، مخزن سکه های او فقط در حدود 90 دلار ناقابل بود که حتی برای صرف یک وعد شام در هتلی که پای و اساس عملیات تیم مالی برادرش در آنجا بود، کافی نبود. حالا که چند روز از آغاز هفته سوم گذشته بود، پول درون جعبه به 655 دلار رسیده بود و به زحمت آن قدری بود که پسر بتواند یک هفته را با آن بگذراند. برادرش فریاد زد پسر خنگ باور نمیکنم که سکه یه سنتی رو انتخاب کردی اما هنوز خیلی دیر نشده به دیدار پدر برو اگه اجازه داد نظرتو تغییر بده حتی اگه فقط 9 میلیون دلار به تو بده مطمئنا بهتر از پول بخور و نمیری که حالا به دست میاری اما پسر اول به حرف برادرش گوش نکرد آن شب پیرمرد در خواب درگذشت چند روز مانده به پایان ماه، مدیر اجرایی پسر دوم خبرهای نگران برایش آورد. بازارها کمی راکت شده بود و بایستی اصلاحاتی نزولی در تخمینهای نویدبخش قبلی انجام می شد. پسر از او تشکر کرد و با نگرانی منتظر گزارشهای بعدی ماند. در صبح روز سی و یکم، روزی که پسرها بایستی به ملاقات پیشکار می رفتند و جعبه را تحویل می گرفتند، مدیر اجرایی او با گزارش نهاییش بازگشت. با بیقراری کمی این سو سو رفت، گلویش را صاف کرد و سپس با گفتن این جمله که اخبار ضد و نقیز هستند، گزارشش را آغاز کرد. نتیجه برخی از سرمایه ها کاملاً عالی بود و برخی دیگر دچار مشکل شده بودند. روی هم رفته پسر پول نسبتا خوبی به دست آورده بود. تیم او موفق شده بود تا یک میلیون دلارش را به یک و نیم میلیون دلار تبدیل کند. یعنی یک افزایش پنجاه درصدی. این خبر خوبی بود. پسر نفس عمیقی کشید و گفت و خبر بعد مدیر اجراییش ادامه داد. خب هزینه‌ها شامل حق کمیسیون تیم، مالیاتها، حق و زحمت کارگزاران، صورت حساب هتل گلویش را صاف کرد و ادامه داد البته دستمزد یک ماه من مجموعاً بیش از یک و هفتاد پنج میلیون دلار شده است پسر دویست و پنجاه هزار دلار به شده بود حالا نه تنها ثروتمند نبود بلکه پول خیلی زیادی نیز به بود او ورشکسته شده بود با وحشت و نگرانی سراسر شهر را به سرعت برای دیدن برادرش تی کرد این بار نسبت به بار اولی که به ملاقات برادرش رفته بود با شک بزرگتری مواجه شد. روز 28م موجودی جعبه پسر اول از مرز یک میلیون دلار گذشته و در روز 29م این مبلغ به دونی میلیون دلار رسیده بود. دیروز در روز سیوم پول او از مرز 5 میلیون دلار گذشته بود و امروز زمانی که پیشکار جعبه را به پسر تحویل داد پول او به 10 میلیون و, و, و, و هجده دلار رسیده بود پسری که سکه یک سنتی را انتخاب کرده بود قدرت و نیروی فوق را کشف کرد که برخی آن را هشتمین مورد از عجایب جهان مینامند یعنی نیروی خلاق و قدرتمند بهره مرکب همان نیرویی که سطح آبگیر را با سنبل آبی پوشانده بود و قورباغه خامه را با آن به کره تبدیل کرده بود. مادر آقای میلیونر. میدانم، داستان آن دو پسر فقط یک افسانه است. اینجا در زندگی واقعی هیچ پیشکاری نیست که به مدت یک ماه هر روز پولتان را دو برابر کند. اما در زندگی واقعی کارها خیلی بیشتر از آنچه شما فکر می‌کنید به این شیوه انجام می شود. یک مثال از زندگی واقعی برایتان بازگو می‌کنم. رزماری اولسوند مادرم. مادرم به مدت 35 سال معاون اداری کلیسای محلمان بود. او حقوق ناچیزی می‌گرفت و اون شغل نیز مزایای زیادی برایش نداشت. اگر آن زمان زندگی من به سختی میگذشت با فوت پدرم زندگی بسیار سخت‌تر نیز شد. پدرم در جنگ جهانی دوم در ارتش خدمت می کرد و وقتی که به خانه بازگشت مشکلات جسمی بسیاری داشت که هرگز کاملا درمان نشدند. پس از 20 سال خدمت کردن در ارتش سرانجام سر از بیمارستان ارتش درآورد. او یکی از ریه هایش را به دلیل آمفیزم از دست داد و در نهایت در چهل و یک سالگی بر اثر حمله قلبی درگذشت. در مراسم خاک سپاری پدرم ارتش همان کاری را انجام داد که احتمالا در تلویزیون دیده اید. همان که پرچم امریکا را به صورت مثلث تا می کنند با تشریفات و موقرانه رژه میروند و پرچم را به دستان بزرگترین پسرش می دهند که در این مورد من بودم. آن زمان یازده ساله بودم. از آن زمان به بعد مادرم زن تنهایی بود که خانواده چهار نفره را سرپرستی می کرد. روزها کار میکرد و پس از برگشتن به خانه غذا میپخت و از ما مراقبت می میکرد. هرگز ناله و نفرین و شکایتی نکرد هیچ وقت. مهم نبود کی باشد و اوضاع چطور باشد همیشه برای من وقت داشت. او آنقدر ثابت قدم و استوار بود که من بعدها همیشه او را روز ثابت قدم صدا میکردم. من هم به سهم خودم می دانستم که باید همه آنچه را به من اعطا شده بود بپذیرم. می دانستم که مادرم نیز در خانواده با درآمد کم بزرگ شده است. همان گونه که ما بزرگ شدیم. از نظر من زندگی همان طوری بود که باید باشد. و چقدر آسان است که فرض کنیم همان طوری که امروز هست همانی است که همیشه خواهد بود. سری به چند سال بعد برویم زمانی که در زندگیم به چند موفقیت بزرگ دست پیدا کرده بودم. در سال 1996 کتابی با عنوان همسایه میلیونر نوشته توماس جی ستنلی و ویلیام دی دنکو به بازار آمد. اگرچه این کتاب امروز کتابی کلاسیک به شمار می رود، از نظر من هنوز هم بهترین توصیف برای این موضوع است که چگونه مردم واقعی با پیروی کردن از اصول برتری خفیف ثروتمند شدهاند. میلیونر که در این کتاب از آنها صحبت شده است ثروتشان را به ارث نبردهند یا با خوششانسی و ریسک های بزرگ به آن ثروت دست نیافتند. آنها هرگز شاهانه و اشرافی زندگی نمی کنند، ماشین های پر و برق و گران قیمت سوار نمیشوند و در خانه های مجلل زندگی نمی کنند. آنها پایین تر از سطح استطاعتشان زندگی می کنند و در زندگی روزمرشان تصمیمات هوشمندانه و معقولی می گیرند. بعد از انتشار آن کتاب دوستانم به من گفتند جف این کتاب و دیدی؟ این کتاب درباره توه دقیقا همون چیزی رو توضیح میده که تو انجام میدی تو همسایه میلیونر هستی این کتاب دقیقا شهر میداد که من چگونه به دارایی ها و سرمایه هایم رسیده بودم برای سالهای متمادی من سطح هزینه های خانوادهام را تا چهار هزار دلار در ماه نگه داشته بودم و اهمیتی نداشت که در آمدم چقدر افزایش می آفت. تا زمانی که یک میلیون دلار در بانک انداز کنم، آن هم بعد از کسر مالیات اجازه ندادم که سطح مخارج ماهانه ما بیش از چهار هزار دلار شود پس از آن مخارج ماهیانه را تا پنج هزار دلار در ماه افزایش دادم چند سال بعد روزی با مادرم نشسته بودم و به صورت اتفاقی درباره آن کتاب و چیزهایی که دوستانم درباره من میگفتند با او صحبت کردم. مانند ثابت قدم بودند، همیشه یک قدم جلوتر از دیگران بودند و همسایه میلیونر ساده و بی افاده بودند. او سرش را تکان داد و گفت: میدونی چرا اینطوریه؟ نمیدانستم منظورش چه بود. جواب دادم: نه، چرا؟ نگاهی به من کرد و گفت: خب، منم یه میلیونر هستم. گفتم منظورتون چیه؟ منظورتون خونه از یا؟ حتی در فضای متورم بازار املاک در سال 1996 هم امکان نداشت که خانه یک میلیون دلار بیار اما اما نمیتوانستم حدس بزنم که منظورش چه بود؟ گفت نه. من دو میلیون دلار پول دارم. برای روز مبادا نگرش داشتم. تو حساب اندازم در حالی که به او خیره شده بودم گفتم چی؟ تکرار کرد. من دو میلیون دلار پول دارم. و در حالی که قیافه متعجبانه من را می‌دید، شانه‌هایش را بالا انداخت و گفت: این چیزی نیست که آدم بخواد دربارش پوز بده. او در تمام آن سال‌هایی که سر کار می‌رفت، از فرزندانش مراقبت می‌کرد و در آن خانه کوچک زندگی می‌کرد، آهسته و بی‌صدا پسنداز کرده بود، پیوسته و مداوم، بدون اینکه کسی متوجه شود، به معنای واقعی یک میلیونر شده بود. نیرویی که سطح آبگیر را با سنبل آبی پوشانده بود، همان که قورباغه با آن خامه را به کره تبدیل کرده بود، و سکه یک سنتی پسر اول را به میلیونها دلار تبدیل کرده بود، همان نیرویی است که حقوق اندک مادرم را به دو میلیون دلار تبدیل کرده بود. این کتاب درباره همان نیروست. اگرچه اگر چه کاملاً از آن بی بودم، تمام عمرم را در کنار یک نمونه عالی از برتری خفیف زندگی می کردم.